اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم قوم خود را انذار کن پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشان آید مبین. گفت ای قوم من برای شما بین دهنده آشکاری هستم الله و اتقوه و اقیعون که خدا را پرستش کنید و از مخالفت او بپرهیزید و مرا اطاعت نمایید یغفر لکم من ذنوبكم و یؤخركم الى اجل مسمه ان اجل الله اذا جاء لا تعلمون اگر چنین كنید خدا گناهانتان را می آمرزد و تا زمان معینی شما را عمر می دهد زیرا هنگامی که اجل الهی فرارسد تأخیری نخواهد داشت اگر میدانستید. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا نوح گفت پروردگارا من قوم خود را شب و روز به سوی تو دعوت کردم سلم يزيدهم دعائي الا فرارا اما دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آنان واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واصروا واستكبروا استكبارا ومن هر زمان آنها را دعوت کردم که ایمان بیاورند و تو آنها را بیامرزی انگشتان خیش را در گوشهایشان قرار داده و لباس هایشان را خود پیچیدند و در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند ثم جهارا. سپس من آنها را با صدای بلند دعوت کردم ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا سپس آشکارا و نهان حقیقت توهید و ایمان را برای آنان بیان داشتم فقلت استغفرو ربکم اندهو کان غفارا به آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش به طلبید که او بسیار آموزنده است. تا باران‌های پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد ما لا ترجون لله و قارا. چرا شما برای خدا عظمت قائل نیستید و قد خلقكم در حالی که شما را در مراحل مختلف آفرید تا از نطفه به انسان کامل رسیدید. الا لم تروا خلق الله سبع سماوات آیا نمی دانید چگونه خداوند هفت آسمان را یکی بالای دیگری آفریده است؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا و ماه در میان آسمانها مایه روشنایی و خورشید را چراغ فروزانی قرار داده است والله من الارض نباتا و خداوند شما را همچون گیاهی از زمین رویانید ثم فيها و اخراجا سپس شما را به همان زمین باز می‌گرداند و بار دیگر شما را خارج می سازد و جعل لكم الارض بساطا و خداوند زمین را برای شما فرش گسترده ای قرار داد تا از راه های وسیع و دره های آن بگذرید قال نوح رب انهم و واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده الا خسارا نوح بعد از نومیدی از هدایت آنان گفت پروردگارا آنها نافرمانی من کردند و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیزی جز زیانکاری بر آنها نیافشود است و مکر و و این رهبران گمراه مکر عظیمی به کار بردند و لا تذرن الهتكم ولا تذرن ود و سواعا ولا و يغوث و يعوق ولا يغوث و يعوق و گفتند دست از خدایان و بت‌های خود بر ندارید به خصوص بت‌های ود، سواء، یقوس، یعوق و نصر را رها نکنید و, و آنها گروه بسیاری را گمراه کردند خداوندا ظالمان را جز زلالت میفزا ما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا, فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا اوری سرانجام همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند و جز خدا یاورانی برای خود نیافتند وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دیارا نوح گفت پروردگارا هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار اینکه ان درهم يضل عبادک ولا یلیدو الا ساجران کفارا چرا که اگر آنها را باقی بگذاری بندگانت را گمراه میکنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آبرند رب اغفر لی ولی والدي ولمن ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی من دخل بيتي مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزيد الظالمین و الا تبارا پروردگارا مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز و ظالمان را جز حلاکت میفزا